عزیزان، آیه زندگی شما بر اطرافیانتون تأثیر داره. سلام و به درس دیگه ای از دانشکدهی کچک کتاب مقدس از سری موزه سرکو خوش اومدیم. رفشی هست که ما اینسان ها برای نگهداری غذا از نمک استفاده می کنیم. در موزه سرکو، ایسا تعلیم میده که ما نمک روی زمین و نور جهان هستیم. به نظر میرسه این مسئولیتی خطیره. معلم ما درس امروز رو تحت عنوان نمک و نور ادامه میده تا به ما کمک کنه بفهمیم عیسی دقیقاً چه چیزی به شاگرداشت علیم میده. حالا با هم به معلممون گوش میکنیم. شما نمک جهان هستید ولی هرگاه نمک مذه خود را از دست بدهد چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور جهان هستید.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 ما الان میخواهیم موعظه سر کوه رو آیه به آیه مطالعه کنیم این متن از کتاب مقدس که خوندم به نظر میرسه نقطه عطفی در تعالیم موعظه سر کوه است ما در درس قبلی دیدیم هشت خوشا حال که موعظه سر کوه با اونها شروع میشه به قول بسیاری از محققین موعظه نیستند اونها تعلیم هستند و بقیه به قول اونها کاربرد هستند عیسی با دادن هشت خوشا حال به ما در واقع به کار ها شروع میکنه در آیه یازده وقتی او بارها از زمیر شخصی شما استفاده میکنه و میگه خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت میکنند و جفا میرسانند و به ناحق هرگونه گونه افترایی به شما میزنند خوشحال باشید و بسیار شادی کنید زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا میرسانید بسیاری یمان می کنند اونجا عملا جایی که کار بورتا شروع میشه بسیاری گمان میکنند اونجا عملا جایی که کار بورتا شروع میشه روش دیگری برای خلاصه کردنه تا اینجا میتونه گفتن این باشه که در هش رفتار زیبا عیسی ما رو به چالش میکشید که به درون نگاه کنیم و ببینیم آیا با فیض خدا شخصیتی درون ما هست که مسیح گونه باشه که این چیزی هست که واقعا ما رو به تبدیل به بخشی از راه حل او و بخشی از جواب او خواهد کرد و بعد وقتی کاربرد ها شروع میشن چنین به نظر میرسه که عیسی میگه حالا به اطراف نگاه کنید به دنیای خود نگاه کنید و به مردم دنیای خود نگاه کنید و چالش مربوط به زمانی رو که خدا با فیض خود شخصیتی در شما ایجاد میکنه که بر فرهنگ و دنیایی که در اون زندگی می کنید تاثیر میذاره ارزیابی کنید ما بخش اول این نگاه به اطراف رو در درس گذشته مطالعه کردیم وقتی که این سخنان رو بررسی می کردیم شما نمک روی زمین هستید منظور عیسی از این چی بود؟ ما به احتمالات زیادی اشاره کردیم اما توجه کنید او نمیگه شما نمک برای زمین دارید او میگه این چیزیه که شما هستید شما نمک زمین هستی. او همینطور گفته اگر شما نمک نباشید پس به هیچ دردی نمیخورید. خورید آیه 13 چالش ترسناکیه بعد از بررسی... چیزی که او از اولین تمثیل منظور داره که میگه شما نمک روی زمین هستید حالا بیایید بعدی رو بررسی کنیم چون او اینجا چهار مثال به ما میده میخواهیم به دومین مثال نگاه کنیم او میگه شما نور جهان هستید وقتی عیسی در آیه 14 رو به شاگردان میکنه و به اونها میگه شما نور جهان هستید این کلمه شما در زبان یونانی به معنی شما و تنها شما آمده است یعنی شما و تنها شما نور جهان هستید. بعد دوباره اینجا او چیزی در مورد دنیا اظهار میکنه و چیزی در مورد شاگردانش اظهار میکنه. دنیا در تاریکیه. او میگه شما و تنها شما نوری هستید که خدای پدر میخواد این جهان داشته باشه. این چیز حیرت انگیزیه که در مورد دنیا و در مورد شاگردانش میگه. ما مقاطعی در تاریخ داشته ایم که از آن با عنوان دوره یاد شده. روشن فکری کلمه که بارها در طی تاریخ به کار رفته تا این واقعیت رو نشون بده که در زمانهایی خاص از تاریخ جهان انفجار اطلاعات وجود داشته و ما اکنون یقیناً در میانه یکی از اون دوره‌ها هستیم. اگر شما این چیزها رو مطالعه کنید، خواهید فهمید که زمان حاضر در طی 50 سال گذشته بیش از هر زمان دیگری کشفیات و اکتشافات انجام شده و در نتیجه دوره‌ای که ما در اون زندگی می‌کنیم به اصر انفجار دانش یا اصر انفجار اطلاعات معروف شده از بسیاری جهات شما میتونید دوره ای رو که در اون زندگی میکنید اصر روشنفکری بنامید با این حال با وجود همه اطلاعاتی که کشف شده و همه دانش به دست آمده در نیم قرن گذشته عیسی میگه دنیا در تاریکی روحانی هست دنیا واقعا نمیدونه آیا باید بگیم که این چیزی بود که عیسی برای زمان خودش در 2000 سال پیش گفته بود؟ من که چنین فکری نمی کنم چون اگرچه امروز دانش و اطلاعات زیادی وجود داره، بزرگترین چالش امروزه این هست که با تمام چیزهایی که می دونید چی چیکار خواهید کرد؟ مشکل تا جایی که به نور و تاریکی مربوطه، الزامن در مورد اطلاعات نیست. چیزی که عیسی از اون به عنوان تاریخی یاد میکنه لزوما به معنی فقدان اطلاعات یا دانش نیست. اون به معنی فقدان نور هست یعنی حقیقتی که مربوط به کاربرد تمام اون اطلاعات و تمام اون دانش هست به نظر میرسه که با تمام دانشی که امروز داریم ما هنوز نمیدونیم که با مشکلات بزرگ چی کار کنیم مشکلات حقیقتا بزرگی که دنیا هنوز با آن مواجهه اگر ما بتونیم به تعالیم بالای کوه عیسی باور کنیم او در واقع میگه و من معتقدم اون امروزه همونقدر صدق میکنه که 2000 سال پیش میکرد. او به کلیسای خودش و به شاگردان خودش میگه به شاگردان حقیقی خودش، شاگردان واقعی او که حقیقتاً تعالیم او رو درک میکردند، او به اونها حقیقت خودش رو و حقیقت تعالیمش رو میگه. ارزشهای خودش و فلسفه خودش رو در مورد این دنیا و در مورد زندگی و چگونگی زیستن میگه. اگر ما تعالیم محتوای معزه سر کوه رو درک کنیم اون موقع معتقدم که میتونیم ببینیم اون امروزه هم کاربرد داره شاگرد عیسی شاگرد حقیقی و راستین عیسی و تنها او نوریه که این جهان نیاز داره دنیا هنوز هم در تاریکی روحانی هست و این شاگرد حقیقی عیسی است که این نور رو داره نوری که دنیا با درماندگی به اون محتاجه این امروز هم به اندازه 2000 سال پیش واقعیت داره در رابطه با این مفهوم نور بودن شاگرد خوبه که به ترتیبی که عیسی این تمثیلها رو به کار برده توجه کنیم. اول او به شاگردانش گفت و من فکر میکنم این تماما به واقعیتی بستگی داره که اون خوشاب ها در زندگی شاگرد کار کرده او به شاگردانش گفت اگر این رفتارها در شما باشه بعد شما و تنها شما نمک زمین خواهید بود شاید این به معنی اصل حیات بخشیه که این دنیا نیاز داره شاید این به معنی نیروییه که مانع فساد روحانی و اخلاقی دنیا خواهد شد اما بعد از این که میگه شما نمک روی زمین هستید در ادامه میگه شما نور جهان هستید برخی از محققین اهمیت واقعی رو به این ترتیب میبینن اگر شما با فیض خدا نمک روی زمین باشید سپس این امکان وجود خواهد داشت که وقتی مردم شما رو میبینن که نمک زمین هستید و این تماما با فیض خدا خواهد بود بعد همونطور که نیقودیموس نزد عیسی اومد اونها هم در مقطع نزد شما خواهند اومد و کنج کاف خواهند بود بدونن چرا شما این گونه هستید اونها مشتاق شنیدن حرفهای مذهبی شما خواهند شد یادتونه در یوحنا باب سه نیقودیموس نزد عیسی اومد و گفتگوی خودش رو با عیسی با این سخنان شروع کرد من کارهایی رو که تو انجام میدی دیدم و حالا اومدم که بشنوم تو چی میگی و به این ترتیب باب گفتگو بین عیسی و نیکودیموس باز شد وقتی باب سوم یوحنا رو بررسی می کردیم گفتیم که امروزه هم هنوز به همون ترتیب هست من باور دارم که همونطوره. اگر با فیض خدا ما نمک هستیم و اگر اون بر مردم تاثیر میذاره، زمانی خواهد رسید که مانند زندانبان فیلیپی مردم کنجکاف خواهند بود بدونن چرا ما اونگونه هستیم و به این ترتیب ما فرصت خواهیم داشت نوری رو که به ما داده شده با مردم قسمت کنیم. حقیقتی که ما باور داریم و میپذیریم، خدا اون رو به کار میگیره تا ما رو نمک روی زمین بکنه. به نظر میرسه که امروز هم به همون ترتیبی هست که در زمان ایسا بود و شاید دانستن اون به ما کمک کنه درد کنیم که چرا او اون مثالها رو با اون ترتیب بیان کرد. شما میتونید اینطور بیان کنید. اگر شما با فیض خدا نمک زمین هستید، پس نور جهان هم هستید. و زمانی خواهد رسید که شما فرصت خواهید داشت که تعلیم بدید یا موعظه کنید یا شهادت بدید که چرا شما نور جهان هستید به نظر میرسه امروزه ما فکر میکنیم که اون ترتیب برعکس شده به نظر میرسه ما فکر میکنیم که دنیا با معزه و تعالیم و الهیات و نظریات ما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و بعد شاید ما روزی اونی بشیم که باید بشیم من فکر می‌کنم این ترتیب رو برعکس می‌کنه. ترتیب هنوز هم همون هست. یعنی اول ما باید با فیض خدا نمک زمین بشیم و بعد مطلب بعدی اینه که ما هنوز فرصت داریم که نور جهان بشیم. عیسی دو تمثیل دیگر در رابطه با مفهوم نور جهان بودن به ما میده. شهری را که بر بالای تپه ای بنا شده نمی‌شود پنهان کرد. اگر شهری بر بالای کوهی بنا بشه به هیچ ترتیب نمیشه اون شهر رو پنهان کرد. ایسا در انجیل مرقص گفته که نمیتونست مخفی بشه. بعضی وقتها او تلاش میکرد که از انبوه جمعیت که دائما دنبال او بودن و میخواستند او رو لمس کنن رها بشه. در یک جا در انجیل مرقص میگه که او به خاطر ازدهام جمعیتی که برای نیازشون به او او رو احاطه کرده بودن مجبور شد به جای خلوتی بره. اما میگه او نتونست مخفی بشه. من فکر می‌کنم او به این شاگردان که به اولین گرده همایی اومده بودند و میخواستن بخشی از راه حل او و بخشی از جواب او بشن میگه حالا اگر این رفتارهای زیبا با فیض خدا در زندگی شما هست و اگر شما با فیض خدا نمک و نور جهان هستید پس امکان نداره که بتونید اون رو مخفی بکنید اگر با فیض خدا شما شاگرد واقعی من باشید و عرضش های واقعی منو داشته باشید و به حقیقتی باور کنید که من اومدم به شما نشون بدم و بگم اگر با فیض خدا واقعا به انجیلی که به شما می سپارم باور کنید قادر نخواهید بود اون رو مخفی کنید حالا یک دقیقه به این فکر کنید فرض کنید شما شاگرد عیسی هستید و سر کار میرید مثلا فکر کنیم که شما تنها شاگرد عیسی در اداره یا فرزند در اون کارخانه یا در محل کار هستید. به خودتون فکر کنید که در اجتماعی قرار گرفتید و شاگرد عیسی هستید فکر میکنید تا چه مدت خواهید تونست این حقیقت رو پنهان کنید که شما شاگرد عیسی مسیح هستی. دو نفر بودند که با همدیگه دیگه کار می کردند و ها با هم همکار بودند و ماشین فروختند. اونا به یک جلسه صبحانه اومده بودند که من برای بازاری ها ترتیب داده بودم. وقتی وارد این جلسه صبحانه شدند، هر کدوم از اونها از دیدن اون یکی جا خورد. اونها وقتی با هم مواجه شدند، با تعجب فریاد زدند تو هم مسیحی هستی؟ حالا این آقایون تمام طول روز رو ساعتها با هم کار می حداقل روزی دوازده ساعت با هم بودن و اکثر اوقات اونها بدون اینکه مشتری در اونجا باشه با هم تنها بودند و هیچ کاری جز صحبت با هم دیگه نداشتن با این حال با وجودی که سالها با هم صحبت می کردن هیچ کدوم از اونها نفهمیده بودند که دیگری مسیحی هست من فکر می کنم ایسا اینجا مطرح می کنه که اگر شما واقعا پیرو و حقیقی او هستید، این امکان وجود نداره که اون را مخفی کنید یا پنهون کنید. فرض کنید که شما توی ایستگاه اتوبوس کنار پلوس رسول میستادید یا توی ترن کنار اون می نشستید. فکر می‌کنید چقدر طول می کشید تا بفهمید او یکی از شاگردان عیسی مسیحه؟ عیسی اینجا اشاره می‌کنه که اگر شما چیزی حقیقی هستید، اگر شما نمک زمین هستید، نه نمکی که نمکی نیست که به هیچ دردی نمی‌خوره، بلکه نمک واقعی اگر شما شاگرد نمکین عیسی باشید اون موقع شما نور جهان هم هستید و اگر با فیض خدا نمک زمین و نور جهان هستید شما شهری خواهید بود که روی تپه بنا شده و نمیشه اون رو مخفی کرد شما قادر نخواهید بود این واقعیت رو پنهان کنید که شاگرد عیسی هستید در یک جامعه به طور کلی چقدر طول میکشه تا برخی مسائل بعضی مسائل اخلاقی مربوط به اینکه چی درسته و چی غلط جا بیفته و اینکه شاگرد عیسی مسیح باید شبیه ایسای مسیح باشه واقعا چقدر در زمینه بعضی جوام طول میکشه تا اینکه یک شاگرد حقیقی و ایماندار ایسای مسیح شناخته بشه من فکر میکنم عیسی پیش بینی کرده که چندان طول نخواهد کشید در واقع من فکر میکنم او داره میگه این برای شما غیر ممکن هست که بتونید این واقعیت رو مخفی کنید که یکی از شاگردان من هستید شاید اون چیزی که عیسی از این مثال مربوط به نور جهان بودن در نظر داشته. شهری رو که بر روی تپه بنا شده یا به طور استراتژیک روی یک کوه یا تپه قرار گرفته نمیشه پنهان کرد. در آیه پانزده اون مثال بزرگ دیگری به ما میده. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد بلکه آن را بر چراغ پایه قرار میدهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. عجب مثال عظیمی دوباره یادتون هست که در انجیل یوحنا در بالاخانه عیسی رو به رسولان کرد مردانی که با بیشتر اونها در اولین گرده همایی مسیحیان ملاقات کرده بود و حالا در آخرین گرده همایی مسیحیان که به اون مباحثه بالاخانه میگیم او رو به اونها کرده و گفت شما مرا برنگذیدید بلکه من شما را برگزیده ام و مأمور کرده ام که بروید و میوه بیاورید نیوهی که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. در یوحنا پانزده شانزده کلمه برگزیدن همون کلمه ای نیست که امروزه برای انتخاب خادمی به کار میبریم اون کلمه یونانییه که سه بار در عهد جدید به اون بر میخوریم معنی اون قرار دادن به صورت راهبردی هست یا به صورت سوغل جشی. همون روشی که یک سردار جنگی نیروهای خودش رو در صحنه نبرد در اطراف هدف مستقر میکنه عیسی اون مردان در یوحنا پانزده شانزده گفته من شما را برگزیده ام و معمور کرده که بروید میوه بیاورید در این مثال زیبا هم شما همون مفهوم رو دارید او میگه شما نمک زمین هستید نور جهان هستید مانند شهری هستید که روی تپه بنا شده و نمیشه اون رو پنهان کرد شما مانند چراغی هستید روی چراغپایه در اون ایام البته اونها برق نداشتند بنابراین از چراغهای روغنی یا شم استفاده میکردند این مثال بسیار متداول و رایج روزمره اون زمان بوده وقتی چراغی رو روشن میکنید احتمالا عیسی با یک حس شوخطبعی میپرسه وقتی چراغی رو روشن میکنید آیا اون رو زیر كاسهای قرار میدید یا زیر چیزی قرار میدید نه، البته که این کار کنید شما اون رو روی چراغ پایه ای در جای بلند قرار میدید و بعد اون چراغ به تمام خانه روشنایی میده. چیزی که عیسی میگه اینه: دنیا در تاریکی هست. ای کسانی که نزد من میایید، شما که میایید تا حقیقت و ارزش هایی را که من به این دنیا آوردم بپذیرید شما مانند چراغی هستید که قبل از ملاقات با من روشن نبودید، اما حالا که من با شما ملاقات کردهام، و شما با من ملاقات کرده اید مواجهه که شما با من داشته اید شما را روشن خواهد کرد اون چراغ شما را روشن خواهد کرد شاید او وقتی از روشن کردن چراغ صحبت میکنه در مورد تبدیل شدن یا تولد دوباره صحبت میکنه او میگه هرگاه او شمعی رو روشن میکنه یا چراغی رو روشن میکنه برای هر چراغی که روشن میکنه چراغدانی داره شما شمعی رو روشن نمیکنید که زیر کرسی یا زیر کاسه ای قرار بدید و او همین کار رو نمی کنه حالا که او ها رو روشن کرده که شما هستید برای هر کدوم از شما شمدان‌هایی داره این باید باعث تشویق در زندگی هر ایمانداری به روشی مهیج باشه یادم یه بار ملوانی میگفت شبان من تنها مسیحی در کل کشتی هستم اون کشتی صدها نفر خدمه داره خوب به خاطر دارم که با تعجب فریاد زدم آیا این عجیب نیست به اون تاریکی درون کشتی فکر کن که نور تو در اون تاریکی چقدر تابناک خواهد بود چون تو تنها نور در کل اون کشتی هستی ببینید یک شم در تاریکترین مکان بیشترین نور را خواهد داشت به شمدان هایی که در اون دوره استفاده می فکر کنید هزاران شم روی اون بود فرض کنید یکی از اون شم ها شما بودید نور شما در اون شمدان که هزاران شم داره چندان چشمگیر نخواهد بود اما اگر همون یک شم کوچک رو بردارید و به گوشه ای تاریک در جایی بروید فکرش رو بکنید که اون نور چقدر ارزشمند خواهد بود اگر شما در شهری باشید که هیچ ایمانداری در اونجا نیست و شما تنها ایماندار اونجا باشید فکر کنید که قرار گرفتن شما در اونجا چقدر میتونه سوغل جیشی باشه اگر این در فروشگاه یا شرکت یا جایی که شما کار میکنید یا در مدرسه ای که درس می دید، یا در محلی که زندگی می کنید حقیقت داشته باشه فکرش رو بکنید که زندگی شما چقدر حیجان انگیز خواهد بود با ملاحظه این مثال من معتقدم که هر ایماندار پیرو ایسای مسیح باید احساس کنه هر جایی که کار می کنه یا زندگی می کنه، یا در کارهای اجتماعی شرکت می کنه و یا حتی به کلیسا میره این مکانها چراغدان های او هستند. و اونها به صورت تصادفی در اونجا قرار نگرفتند. اونها توسط خداوند عیسی مسیح به طور جیشی و راهبردی در اون مکان قرار گرفتند. مانند شمعی که روشن شده و روی شمدان قرار گرفته. مسیحیت واقعی وقتی شما به اساس اون فکر می کنید و به واقعیت اون میپردازید، مربوط به مواجهه با عیسی مسیح است. مواجهه آنچنان واقعی آنچنان حیاتی چران که گویی قبل از اون مواجهه، قبل از اینکه با او ملاقات کنید، شما مانند شمهای خاموش بودید. اما حالا که با مسیح ملاقات کرده اید، او زندگی شما رو روشن میکنه. او شمع شما رو روشن میکنه. وقتی او شمع شما رو روشن میکنه، تنها به این خاطر نیست که شمع شما باید روشن بشه. این فقط به خاطر شما نیست. او شما را دوست داره و به خاطر شما هست. اما تنها به خاطر شما نیست وقتی شم ای که شما هستید روشن شد حالا مسئله بعدی اینه شمدانی که او میخواد شما را در اون قرار بده کجاست ببینید استراتژی او در آیه 16 نشون داده شده نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینن و پدر آسمانی شما را تمجید نماید این هم آیه بزرگ دیگری هست که از این تعالیم بزرگ به نام معزه سرکوه گرفته شده از یک نظر این نور شما هست اما ما میدونیم کسی که شمع رو روشن کرده خود شما نیستید اون عیسی مسیحه پس از یک نظر هم این نور شما نیست بلکه این نور او هست این نوریه که او میخواد شما باشید پس او به اون به عنوان زندگی شما اشاره میکنه نور شما نیست باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. به عبارتی وقتی مردم میبینند شما روی این شمدان نور پخش میکنید، به عنوان شمعی که شما هستید و میسوزید، مردم به این نوری که شما هستید نگاه خواهند کرد و فقط به کشیده شدن به سوی شما قانع نخواهند شد. اونها به سوی شما کشیده خواهند شد و بعد به طرف پدر آسمانی شما هدایت خواهند شد. چون خواهند فهمید در واقع شما مسئول اون نوری که میتابه نیستید شما منبع اون نوری که میتابه نیستی چیزهای زیادی در مثالهای های عیسی هست برای اینکه یک شمع نور ساطع بکنه اون باید روشن بشه و مورد استفاده قرار بگیره هیچ راهی نیست که شمع نسوزه و از خودش نور بده اگر قرار هست که نور اون بتابه باید مورد استفاده قرار بگیره تنها راهی که اون غیر قابل استفاده میشه اینه که اون رو خاموش کنند. اما هیچ راهی نیست که اون بتونه نور بده و از خودش محافظت کنه به عبارت دیگه ما برای اینکه مانند نوری بتابیم باید از خودمون مایه بذاریم. باید از خودگذشتگی داشته باشیم عیسی میگه که به محض اینکه شمدانی رو که او براتون انتخاب کرده پیدا کردید بعد از اون اونجا بسوزید اونجا برای او بسوزید و نور بافشانی نوری که مردم رو نه به سوی شما بلکه به سوی پدر آسمانی شما بکشونه. نوری که توجه اونها رو جلب کنه. اونها خواهند گفت یه چیز غیرعادی در مورد اون شخص هست. یه چیز العاده در اون شخص هست. و این کیفیت به راحتی توسط اون شخص قابل توضیح نخواهد بود. وقتی اونها بیان که اعمال نیک شما رو مشاهده بکنند که البته همان نور شما هست، بعد اونها هدایت خواهند شد. تا به پدر آسمانی جلال بدن که منبع و نیروی پشت همیگه این هاست. ایسا با گفتن اینکه به درون نگاه کنید، در خوشاب ها میگه حالا به اطراف نگاه کنید. به اطراف دنیای خودتون نگاه کنید و چالش مربوط به زمانی رو ملاحظه کنید که تقریبا شخصیتی که شما با فیض خدا درون خودتون دارید بر فرهنگ تأثیر میذاره. فرهنگی که فاسد هست. فرهنگی که حیات نداره. فرهنگی که در تاریکیه نوری باشید که به طور جیشی در جایی قرار گرفتید که عیسی شما رو دعوت کرده تا اونجا باشید دوستای گلم کردیم که دانش روی وفاداری برای ما بودید و از دیگران هم دعوت کردید تا با ما در این درس ها همراه باشن ما اینه که این درس ها به شما کمک کنه تا در ایمان و دانش کتاب مقدس به عنوان شاگردان اون رشد کنید اما این کافی نیست که تنها با ذهنمون بفهمیم ما امیدواریم که این درس ها به شما کمک کنند تا معنی واقعی تعلیم ایسا و روش کاربرد اونها رو در زندگی روزمرتون با تموم دل درک کنید حالا تا برنامه بعدی باشد که خداوند و ما عیسی مسیح شما رو با قوت خودش پر کنه تا بتونید شاگرد وفاداری باشید که به دعوت اون پاسخ بدید